سبون حب سرط یعنی بینش دادنی نسبت به مطالبی که شده شده بسر، یوبسته <تصفيق> رو پبسره وزده تفعیله مستر باب تفعیله در صورتی که کلمه ناقص میشه مثل زکا یو زکی تذکیه هم اگر در غیر اگر در غیر ناقص بیا سماهیه مثل حکم ده کامله یا کامله، حکم ده که تکمیل هم. بسیاره. حالا تبصره یعنی آخوند تبصره در اینجا یک تبصره است بینش دادن به شما درخصوص مطالبی که گفته شد. مطالبی که گفته شد چی بود؟ اینکه فرد سه زمان دارد. زمان ماضی. زمان مستقبل و زمان حالا میگه تبصیر علمازی مبنی یا حلال فرد بدانه مازی که گفتیم این فعل مازی مبنیه بر بعد فرد, فرد. مازی مبنیست بر مبنی بر زربا باز مبنی بر زربون زربه به خاطر مناسبت واخت چکای کردن زربون زربو. زربت تا آخر زرب نه هم که به خاطر شدت به سالوه زنید به فیل و طوالی عربه عربه پس اولا و به زا اصلا باید فیل مازی مبنی بر فتح باشه نیست و زنبای گاه این برش آرز میشه که آخرش بعد دیگه نیست مثلا سکون اینها آرز هست علوازی مبنی یا نلیفا الا ازاکان آخره و علفا مگر زمانی که آخرش علف باشه یعنی چجوری باشه مثلا آ؟ رما و دعا آخر فعل آخر فعل یعنی لامول فیلش مگر زمانی که آخرش یعنی لامول فیلش چی باشه؟ علف باشه اونی که آخرش علفه مثل رما رمایه دعا دعا و این الان مبنی بر فتح مقدر میشه چرا چون الف دیگه قبوله هرگه الا ازاکانه آخرون و ها که در این صورت من میبر سکونه ده. چون الف ساکن او اتصل به هی زمیر رو رفع متحرکن یا بهش بشه بچسب زمیر رفع متحرک زمیر رفع متحرک کدوم ها رو از زرب نه به اون طرف اینا همه زمین رفتن زرب نه زرب تا زرب تو ما زرب تو زرب تا زرب تو ما زرب تو نه زرب تو زرب نه اینا همه زمایل رفتی هستن و همه هم متحلقه کرد مثل زربا علفش نیستن که چیه ساکنه زربون مثل واقع نیستن که چیه اینا همه زماهیل رفتی هستند که چی متحرک متحرکندارای حرک اگر اینها هم بچسبند به خاطر توالی عربه حرکات چی میشه؟ چون خب اینها متحرکند به خاطر توالی عربه حرکات ساکن میشه واقعا شدت اتصال زمیر به او اتصال به هی زمیر و رفعه زن ببینیم ما هم زن ببینیم چه زرم و چی بفتیم؟ بفتیم فعل مازی اولا و به ذات مدلی بر فتر ولی اگر آخرش علف باشه رما و آ، مبنی بر سکون میشه و اگر آخرش زمیر رفع بچسته یا واو بچسته در این صورت هم مبنی بر سکون یا مبنی بر زنب است. قال بعضي مبني على الف نحو ضربا الا اذا كان اخر وو الفا نحو رما و دعا او اتصل به ذي ضمير رفع متحلكم نحو ضربنا الى اخريه او واو نحو یا وارد پیش خواست ما نه. مضارع شده میگه بالمضارع ان تصنبهی نون و اناس نون و اناس اوناس غلطه که تو اصطلاحات مصاوردا میگن ذکورن و اوناسن غلط است ذکورن و اناس تو قرآن هم رسیده اناس که ماشون واردن اناس اوناس اصلا نیست میگه ول مزاره انتصله به این نون اگر مزاره بهش متصل بشه نونه اناس نونه مهند نسی که یز رفت بونی بر سکن یعنی چون تو ماضی اتصال زنی به داشتیم و کردیم اینجا هم یز رفت مبنی او نون و نون و تحقیل. یا اگر متصل بشه بهش نون تحکیل مباشرتن آه مباشرتن یعنی به طور مستقیل مباشرتن یعنی چی؟ مستقیل مباشرتن مستقیلن بدون اینکه بین نون و لاملفل چیزی فاصله کند ولو تقدیلن مباشرتن یعنی بدون اینکه که بین نون تحکید و لامولفه چیزی فاصله کند ولو تقدیرن یه میگن اگر فاصله ای نباشد ولو تقدیرن اش میگن نون تحکید مباشر است. مثل کهل یزربند کهل یزربند یا لیزربند چرا؟ چون نون تحکید به فعل مزاره در موقعی که نام داره جواب قسمه یا انشاییه مثل چی؟ استفهان میچست بود یا یزره بنده الان نگاه کنید در یزره بنده یزره بنده حل یزره بنا. در اینجا ما نمیگیم مبنی بر زم حل یزره بنده مقربه علامت رفعش چیه؟ نون موقفر بوده حلی از ربونه در رفت چی بوده؟ حلی از ربونه بعد متصل شده به نون شده چی؟ حلی از ربونه اجتماع ستا نون شده اون نونی که علامت رفت بوده در فیل چی شده؟ افتاده. چون اجتماع سلاسه نون ها بعد وقتی نون افتاد حلی از ربونه نه. حلی از بور نه نون افتاد التقای ساکنین میشه بین چیه چی؟ وابا نونه افتاد میشه از چون ماید و دارد زمه هست وابا هست کردن شد چی؟ علی از ربون نه الان این فعل رو میگن چیه؟ معرب است. علامت رفعش چیه؟ ها؟ نونه مقدر نونه مقدر چطور نه؟ جا ام موسا شما میگفتید این موسا چیه؟ جا ام موسا مرفوعه. میگفتیم علامت رفعش چیه؟ میگفتید چی؟ رفع مقدر ذمه مقدر چون الف قبول اینجا میگید علامت رفعش چیه؟ نونه به شرطی که مباشر باشه که هل جزیره بن نه هل جزیره فعل الف پس در این صورت که نونه در حکه کششسته مفعول و الا و الا یعنی چی؟ یعنی اگر نون نداشت حالا دوتا نون رو چه نونه؟ جمع مهند چه نونه؟ درکی اگر از این نونات خبری نبود و مرفوع پس فعل مزاره چیه؟ مرفوعه یعنی چی مرفوعه؟ یعنی مرفوع است یا لفتن یا دردیرن مرفوع است یا لفتن یا دردیرن حالا گاهی اوقات میبینید مثلا فرسکو یزربو یارزی یعنی یزر بو مرفوع است علامت رفعش چیه زمنه اخر یزر بو بودی یرمی یرمی چیه اینم مبنی بر... اینم مرفوعه علامت رفعش هم چیه زم است اما زم چیه تقديري وه الا این ان تجلدا عن ناس بنجازه مرفوع است اما به شرط اینکه مجرد باشد از چی؟ ناسب و جازم. خب رفت دهنده به فعل مزاره چیه؟ آمل معنویه. معنویه و الاف هم عرفون انتجر و نهن ناسب و شو. اگه مجرد باشه از ناسب و جازم. حالا اگه مجرد از ناسب و جازم نباشه چی؟ و الاف هم او 1 یا منصوب میشه به عامل نیست یا مجرور میشه به عامله جاست حالا گاهی اوقات منصوب از لفظا ها گاهی اوقات منصوب از لفظا گاهی اوقات هم ممکنه چی بشه تعرضان باشه مثلا لن بر سر یغریب چی میشه لن یغریبا ظاهره لن بر سر یخشاد لن یخشاد مقدر علامت نصب چیه مقدره فتح هست مقدره به چه دلیل؟ به دلیل اینکه علف قبول حرکه آشو. جزم هم همی کنه گاهی اوقات علامت جزم حسف حرکت هست مثل چی؟ لم یزره گاهی اوقات علامت جزم حسف حرف لامون فیره مثل لم یرمه لم یقزه لم یرشه ها؟ گایو قال علامت جزم حذف نونه مثل لام یز و لام فعل امر اما فعل هم چی و فعل, ام و و فعل امر یبنو ما یتزم به مضارعو فعل امر مبنی علامت بناش همون علامتیه که تو فعل مزاره علامت جزمه الان علام مثلا ارمه مبنی بر چیه؟ ارمه مبنی بر چیه؟ ارمه فعل امره مبنی بر چیه؟ به لام لاملفه چرا؟ چو علامت جزمش در مضارع چیه؟ حذف لام. اذربو مبنی بر چیه؟ مبنی بر حذف نون و رفت، اا، مبنی شد. چرا؟ چون فعل مضارعش مجزوم است، آا، یذربون. چیه چی؟ عل یذربود، مثلا لم یذربود. مجزوم است به چی؟ به حذف همون علامتی که در فعل مزاره علامت جزم است در فعل امر تکرار می شود و علامت بنابرای حساب می دو و فعل و فعل العمر فعل عمر مبنی می شود و ما آنچه یجزم و بهی مزاره و مجزوم می شود و چیز مزاره اون فعل عمر مزاره فعل عمرو می گیرید مثلا الان ازربنه مبنی بر چیه مبنی بر ازربنه سکونه چرا چون یزربنه هم مبنی بر پس بنابراین یاد میگیری که هرچه که عامل بود در مزاره در صورت جزمی همون در صورت عملی آمله بنامست آمله بنامست اینه علامت بنامست و فیلار ام یوب نه علامه یویز اما بینیم فایده فایده تو حالا تو این فایده میخواد اعراب و بنام رو برای ما تعریف کنیم که چیست نگه ال اعراب و اثرون اعراب اثر است. همین که اثر است یعنی چی؟ یعنی احتیاج به محصر دارد احتیاج به آمل دارد اعراب اثره یعنی یه کاری که یه نفر انجام نگیرد که ناچه با اثره احتیاج به مؤثر. یعنی بدون آمل نمیشه حال اعراب ها اثره یجله به حول که جلبش میکنه می آوردش کی؟ آمه اثریست که یجله به حول آمه صفت اثریست اثر اثریست که جلب کرده هست آن را آورده هست آن را آمه آمه ناگه بی آخر الكلمته. کجا میاره؟ آمه این اثر جلب این اثر اعرابی رو میگه بی آخر کلمته در آخر یک کلمته حالا در آخر کلمه میاره گای لفظیه مثل چی؟ زینون؟ گای تقدیریه مثل چی؟ موسا؟ گای اوقات لفظیه مثل یزربو گای تقدیریه مثل چی؟ یخشاب یکی از اسم سازد؟ یکی از اسم پس اعراب اثریست که آمد او را میآورد، در آخر کلمه حالا یا به شکل نقزی میاره مثل زیدون یزره با یا به شکل تقدیری میاره مثل موسا یخشا حالا من دو دو شده زیدون یزره با یعنی چی؟ زید میزند یا یزره با زیدون میزند زید اون طرف میگیم یخشا موسا و موسا بگیریم این ز میزنند و موسی میزنند خب اینا با انوا هو انوا را چند تاست میگه با انوا هو رفع و نصب و جر و جزم چند تا شد 4 رفع از دو نصب از دو جر دست و جزم اون سه تا اول در اسم پیدا میشه دوتای اول نسب و رفع و چهارومی در فیل پیدا میشه درست؟ اول و دوم و چهارم در فیله اول و دوم و در. در جر مخصوص اسمه جزم مخصوص فیله وقیه رفع و نسب با هم مشترکن هم در اسم پیدا میشه هم در رفع و نسبون و جرون و جزم بالا اول اون دو تا اولی یوجدان فعل اسم و با پیدا میشن هم در اسم هم در فل. مثلا اگه بخوایم دو تا اسم یه اسم مثال بزنیم یه فعل که هر دو معفون چی میگیم مثال ازره بودید ازره زهید انا از چیز یزره یزر یه اسم سال زدی بیا بگیر فیل هر دو هم چی یه اسم یه سال بزنی یه فیل که ولن اشتی ولن اشتیما لن اشتی یعنی چی؟ هلگه از فوش نمیدن زیدان لن اشتی من الان چیه؟ زید چیه؟ لن اشتی شد یذره و زیدون ولن عشت من زیدون پس الابلان یوجدان فیده اسم رد و سالس یفتستو بره مرد تو بزن و رابه یفتستو بره نیزه چی؟ لم یذره لم بنا چیه؟ اعراب و بنا دیگه بنا چیه؟ میگه ولبناه اون بنای بناه کیفیت چگونگی کیفیتیست چگونگییست اینجا میبینید که میگه چی؟ نمیگه اثر میگه چی؟ چگونگی چون این چگونگیه دیگه اثر نیست که چیزی آورده باشد آورد. چگونگیه یعنی یک است در آخر که به وسیله عامل آورده محسر. کیفیتون فی آخر الکلمه. کیفیتی است در آخر کلمه حالا یا مبنی بر فت یا مبنی بر زم یا مبنی بر زم یا مبنی بر کیفیت اون در آخر کلمه لا یجلبوها عاملان که اون کیفیت رو عاملی نمیبره بعد که بر اون کیفیت چه شده این کلمه آفریده شده خارج شده عاملی اون را تغییر کیفیت بی آخر کلمات لا یجلهوها عامرون حالا انواع بنا چیه میگه و انواع او زمان و کسرون و فتحون و سکون زم است کسر است و فتح است و سکون بنا بر خلاف اعراب فقط در اسم و فعل پیدا میشه فعل مزاره و اسم اما اه بنا چی؟ آه بنا هم میتونه در اسم باشه هم میتونه در فعل باشه هم میتونه در ها حرف باشه این سه تاست پس ما بعد برای هر کدوم از در واقع سه تا مثال بزنیم نه ولی بعضیاش در اسم مثلا نیومده در فعل نیومده در حرف بگیریم این حالا نگاه کنی فعل اول، اون دوتای اول کدومه زم و کس یوجدان فعل اسم و حرف پیدا میشن در اسم و در اسم پیدا میشن در حرف هم پیدا میشن اما دیگه در فعل فعل مبنی بر زم نداریم فعل مبنی بر کس رم بگید وله هم نهو حیثو این چیه؟ اسم است ظرف هست, هست. دائمول اضافه است. و اضافه به جمله هم می شود مبنی بر زم هست مبنیه بر چیه؟ زم. حالا اگه از اون بپرسن حیثو چرا مبنی شده؟ بگی چه شباحتی داره به هم؟ این که شباهت به حرف نمیرسون یه دو حرفی بود شباهت افتغاری دارد گفتم مزافنه چیه؟ جمله است مزافنه لک بیان کننده مزافه پس پنامودین این در بیان خودش نیازه به جمله داره مثل هر این امسه اسم هست مبنی بر کسر هست به معنی یعنی چی؟ این مال اسم یکی زم یکی کسر حرف میگیم مثال بزنم. میگه چشم منظور حرف مبنی بر زم منظور حرف جمع. بگیم حرف مبنی بر کسر مثال بزن به کسر نام جعد باید کجا ل ب, ب ل بزیده ب زید ها هن؟ مبنی بر کسر ول اخیران اما اون دو تای آخری دو تا آخری کدوم است را فاطوس ول اخیران یوجدان فیل کلمه سلاس در هر ستا پیدا میشن یعنی هم در اسم پیدا میشن هم در فعل پیدا میشن هم در پا چند مثال میخوام؟ دو ستا نهو مثال اینه اسم مبیبه اسم مبیبه قامه خیل مبنی با، فرد سوفا، حرف مبنی برد فرد سته شد دیگه نشد کم حالا چه خبریه چه استقامیه اسم مبنی برد سکوم قوم فیل مبنی برد سکوم چرا جان گفتیم که بناه بله هم به همون چیزیه که جزم مزارش بوده در قامه یقومه جزم مزارش به چیه؟ به حس حرکه آخر یعنی سکوم پیدا کرده نگه بابش هم افتاده میگیم اون باب به جزمی نیفتاده بلکه اون باب به التقاه ساکنه درست شد. قوم و حل حل چیه؟ آه. حرف است. درست شد. پس بنابراین ما برای هر کدوم مثالی خدمت شما عرض کردیم من لامه جر رو یه مثال دیگر هم برای شما زدم کدوم مثال زدم با حرف جر آه؟ چرا چون لامه حرف جر صد در صد مپنی بر که نیست یک جا هست که مبنی بر میشه کجاست موقع که به زمیر میچسبه. به خاطر همین ما با رو هم بهش توضیح ما تو مطلب قبل مگه مجمل خوندیم که حالا توضیح بله علای مراب ما چجوری خوندیم مجمل حالا چجوری میخواد توضیح بده حسابی که اینها رو برای ما توضیح هم علای مر رفت علای رفت میگیم چند تاست میگه چهار علا امر رفع ار و اون علا امر رفع چهار دست از زمتو یک علا امر رفع در بعضی کلمات زلم هست در بعضی کلمات علفه در بعضی کلمات واوه در بعضی کلمات علامت رفع چیه حالا ببینیم زنبه در مثلا چه کلمه‌ای علامت رفته؟ <تصفيق> مثل زیدون رجال الف تصنیه درست شو زیدان واقع جم زیدونه نون فعل مزاره که گفتیم رفش به چی نونه عوضه قضی دیگه وجود نون علامت رف مثل یزربونه یکترونه حسفش به ناصبه است یا به لم یقطلو یا انیقطلو درست شد؟ حالا به طور اجمال گفتیم یکی یه دونه براشون بسار بریم سر تفسیم فزمت و فل اسم مفرده زمه علامت است در اسم مفرد البته اسم مفرد زمه علامت بگی رفعه اوز مثل چی؟ زیدون نجام زیدون رجل. حالا چون معرفه باشه چه؟ نکرو باشه هندو چه چی؟ مهنس باشه فرقی اسم باشه پفرد باشه ول جمعه مکسره و یکم جمعه مکسر حالا جمعه مکسر رجل. رجال زی زیود هند هنود ببینید که باز هم هنود و زیود و رجال بود جمع جمعه مهندس جمع جمعه سالم میشه چی؟ سماوات رفت بشه؟ سماوات مسلمات و یکم فعل مزاره فعل مزاره مثل گذره بود تذره بود زمه علامت البته در فیر مزاره در همین چهار دسیقه که قدقتون ارز کردن درست پس زمه علامت اعراب است در اسم مفرد جمع مکستر جمع مهندس سالم مزاره البته مثلا می رو دونید که زمه علامت رفع است ولو تقدیران دیگه مثلا در یزرگو زمه علامت رفع است در یرمی چی ذمه مقدم در اسم مفرد زید علامت رفت در موسا به توره مثلا در جمع مکسر در رجالن علامت رفع است مریض جمع مکسرش میشه مرزا مرزا چی؟ علامت رفعه همون چی؟ نه زمه علامت رفعه همون ترد وله علف علف چی؟ فلموسن نه علف علامت رفعه است در تصمیه میگه تصمیه دیگه چیز تعریف کن میریم میگه تصمیه وخواه مادر لعلا اسمی تصمیه چیزیه که اسمیه که دلالت دو کنن دو چیز الاس نگیم اما و اقنا انلموتا آتفه اینه و ما رو بی نیاز کنه از اینکه که به هم عطفشون کنه تو یه نفر ممکنه بگه که خب مگه تصمیه این نیست که تو تعریف کردی دلالت کنه بر دوتا میگه بلی میگه زیدان و زیدان دلالت پس چی میکنه؟ دوتا میکنه میگه زیدان و زیدان مگه چون به تصنیه رسیدیم میباید دوبار گفت زیدان و زیدان. درست؟ خب اینم باز پس بنابراین تصنیه هست میگه نه اقنان متعاطفه یعنی اقنانا متعاطفه ما رو بی نیاز کنه از اینکه که چکار کنیم اون دوتا رو عطف کنیم به هم یک علمه باشه عطفی گرفتی چی گفتی یا نه؟ میگه پس چیزی که دلالت بر تصمیه کنه و ما رو بنییاز از حذف کردن باشه بی نیاز کنه اینو بهش میگن تسنیه فعل مصم تسنیه و ملحقاتی و همچنین ملحقات تسنیه ملحقات تسنیه چی بود کلا کلتا اسنان اسنان درست شد ملحقات وهیه و اون ملحقات کلا هست و کلتا به شرط اینکه این, این دو تا شده بودن اضافه به مضافه این ایلا مزبره. چون موقع نقششون تو جمله میشه چی؟ تاکید نه؟ جا انی ار رجلان کلاه ما وعی تو ار رجلان کلاه اما مرر تو به رجلان بعد گفتیم اگه به اسم زاهر اضافه شن میشه چی؟ مگه به اسم ظاهر اضافه شدن ایرابشون میشه تقدیری در همه صورتها به علف میاد کلار رجولین کلار رجولین کلار رجولین کل تا معنی است و انسان و فرعاهو و انسان و دو فرعش انسان میگه دو تا فرع داره یعنی دو تا معنی داره کدوم هست دو تا معنی؟ یکی اسنان که مشهوره و یکی سنتان که غیره و اسنان و فراعه و دو فره که یکی اسنتانه و یکی سنتان ولواف و یکی هم واف ببینید چرا اینها تصمیه نیستن ملحق تصمیه اولا اینا دو رو که میفهمونن یعنی اون تیکه اول و هو و ما دلالا اسنه در اینها چیه؟ وجود داریم اما این که گفته ما رو بی نیاز کنه از عطف کردن یعنی با عطف کردن می شده درستشون کنیم ولی ما عطف نکردیم یعنی در عالم خارج چی بوده؟ دو تا مفرد بوده یعنی زیدان در خارج بوده زیدان و زیدان. یعنی شرط تصمیه اینه که مفرد بگید داشته باشه و یه مفردشو کنار یه مفرد دیگر بذاریم عطف نکنیم بلکه با عل در کلاب و کلتا و اسنان اسنتان این نیست چرا؟ چون کلاو و کلتا اصلا مفرد ندارن اصلا این نبوده که کل باشه بعد بشه کلا کلت باشه باید بشه کلتا این طور نیست مفرد ندارن مشخص یه لفظ اما معناش معنی چیه؟ تصنیم است اسنان و اسنتان و سنتان هم همینطوره. هم. اینها هم مفرد ندارن اسنه نبوده مفردش که هلف و نون بیاریم بشه چی؟ اسنه اسنت نبوده که هلف و نون بیاریم بشه تام اینطوری نیست مفرد؟ ندارن چون مفرد نداشتن لذا اینها رو تصمیه حساب نکردن بهشون گفتن ملحقه به تصمیه خوب یاد میگید این را ها. ولواف به جمع مذکر واف کجا علامته میگه در جمع مذکر سالم همه سال واو در همه مذکرها میشه جنب است مثلا رجل نمیشه به رجلون جنب است نه دوسته این میشه با واو جنب است یکی علم باشد مثل چی؟ زید که بشه زیدون یکی علم باشد و دیگری وصف باشد مثل زاربون که شد چی؟ زاربون دی بقیه چیزها قابل جمع با, با و ولوافت الجمع المذکر سابق و ملحقات و ملحقات جمع المذکر سابق ملحقاتش چی بود؟ اولو اشرونه اینا و یه اولو اینم مفرد ندارد اولو مفرد بکید اشرونه و باقونه اشرون و بابش هم برخلاف جمع هستن به خاطر همین چیه؟ جمع اصاب ناشتن هر جمعی باید سه برابر مفرد خودش رو حداقل اقل بفهمونه زیدون حداقل چیزی رو که برش دلالت میکنه چیه؟ سه تا زیدون حالا اشرون اینطور هست یا نیست؟, نیست؟ اگه اشرون بخواد حداقل جمع باشه باید حتی دلالت بر چند رو بکنه؟ سیدو. حتی دلالت رو با بر سیدو باید شکل جمع دارد اعراب جمع هم دارد اما جمع و واب علامت رفت است به اسماع ستته در و ستته به اسماع ستته کنومه؟ و یا آهو، افوهو افوهو هموها چرا گم ها دیروز خود نمیده که درده درده. که هم از قیشان زنه یعنی از طرف شوهرش بزا برا مرد به کار هموها و فوهو و هنوهو و زوماله که زوماله به مال اضافه کرد که بگه زومه زمیر اضافه بعد شرطشون چی بود؟ مفردتا به شرط اینکه اینها ها مفرد باشن یعنی تصمیه و جمع بسته نشده باشن چون اگه تصمیه و جم بشن تصمیه بشه اعراب تصمیه بیدان میکنن جم هم باشن اعراب جمع پیدا میکنن مفرد باشن مکبرتا مسققر نباشن چون اگه مسققر باشن اعراب به حرکت بیدان همی اینجه او بایی او باییم مضاف وتن علا غیر لیا المتکلم و مضاف به سوی غیر یار متکلم باشه مضاف باشه اما مضاف سوی یا نباشه چون اگه مضاف سوی یا شدن اعرابش میشه اعرا به ها تعدیبی اون که جا آخی و ایتو آخی مررتو به و نون نون علامت چیه؟ و نون فعل مضار متصل به زمیر رو رافت نون در مضارعی که متصل شده به اون ضمیره و حالا میخواد الف باشه یا واو باشه یزربان یزربان ها او جمع حالا این ضمیر ما مال مصنا باشه یزربان تزربان یا مال جمع باشه مثل چی؟ یزربونه تزربونه <تصفيق> <تلوش شو؟ تصفيق> یا مخاطبه باشی نیسته تزربی نه نه و یفعلانه تفعلانه یفعلونه تفعلونه تفعلینه به اینا میگن افعال خمسه افعال چی؟ خمسه نون علامت رفع است در افعال خمسه یعنی افعال خمسه در ظاهر خمسه هم در باطه هفته هستن یفعلانه یه دونه اما تفعلانه چند تا ستا تا یه تفعلانه تصمیه قایب داریم، سیغه یه یه تفعلانه داریم سیغه هشتون. یه تفعلانه داریم سیغه 11 هم. یه معلوم و تفعلانه و